افسان به نام خدای یگانی مهربان سلام افسانه ها ریشه در جرفای فرهنگ مردمان هر سرزمین دارند و همین مردم و بازار در طول تاریخ اون رو حفظ کردن. مخصوصن کسانی که در اروپا به شکل گسترده به گردآوری افسانه ها پرداختن برادران گرین بودند که در آغاز قرن 19 هم کتاب افسانه های خانه کودکان رو منتشر کردند. و ما افسانه ای از سرزمین ایتالیاست به نام افسانه گوزن شاه، دلفین شاه و کبوتر شاه برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم ایتالیا نوشته آن مکدانل با ترجمه ای از رزوان خرمیان. روزگاران خیلی دور در سرزمین ایتالیا پادشاهی زندگی میکرد که سه دختر داشت اونا سه خاصی برداشتن. پسران پادشاه فیرمید که بهترین و برازنده ترین شاهزادگان اون زمان بودن ولی با این حال پادشاه حاضر نبود که دخترانش رو به پسران پادشاه فیرمید بده و به خاطر همین هم از جادوگر بدجنسی درخواست کرد که هر پسر رو تلس کنه. جادوگر بدجنس هم یکی از اونا رو به شکل کبوتر، دیگری رو به شکل گوزن، و آخری رو هم به شکل دلفین در آورد. یکی از شهازاده با عصبانیت به پادشاه گفت، اینو بدون، اینو بدون که فقط ظاهر ما تغییر کرده و ما همچنان دخترانت رو دوست داریم. و شاهزاده دیگه, دیگه اضافه کرد اگه حاضر نشی رو به عقد مادر بیاری حتما از کارت پشیمون میشی پادشاه خنده کرد و گفت <تص> <tactile> آه, چه تهدید مزهکیه برین و هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدین شاهزاده ها از این حرف پادشاه بیشتر عصب شده شاهزادهی که به شکل کبوتر بود تمام پرنده ها رو به لونش دعوت کرد و به اونها گفت دوستان من خواهشی از شما دارم. پرنده ها یک صدا پرسیدن چه خواهشی؟ شاهزاده کبوتر گفت از شما میخوام به مزاره پادشاه برین و تمام غلات و محصولاتی که کشاورزی اونو بخورین و هیچ برگ و دونهی رو باقی نذارین. پرنده ها یک صدا گفتن مطمئن باش تا فردا حتی یه دونه توی مزاره پادشاه باقی نمیمونه و همین کار رو هم کردن و تمام زمین های کشاورزی پادشاه رو ویران کردن بعد شهزادهی که به شکل گوز در اومده بود هم تمام بزها و خرگوش ها رو نزد خودش فراخند و گفت دوستان من از شما میخوام تمام برگ ها و گل های این سرزمین رو بخوریم. و چند ساعت بعد بزها و خرگوش ها همین کارو کردن و دیگه برگ یا گلی توی سرزمین پادشاه برجان نمود. دو برادر یعنی شاهزاده کبوتر و شاهزاده گوزن به سراغ برادر کوچیک ترشون رفتن و از اونم خواستن از پادشاه انتقام بگیره. برادر کوچیک که به شکل دلفین در اومده بود به سراغ اجده دریاها رفت و اون گفت ای اجده قدرتمند دریاها، خواهش میکنم تمام کشتی های پادشاه رو که توی آب در حال حرکتن نابود کن از بین ببر هنوز حرف شاهزاد دلفین تمام نشده بود که طوفان سختی به پا شد و تمام کشتی های پادشاه رو نابود کرد و اون چه بر جا موند تکه کشتی کشتیه پادشاه بود و بس پادشاه وقتی انتقام سه شاهزادگی سرزمین فیرمید رو دید تسلیم شد و بونها گفت بسیار خوب بسیار خوب من دخترانم رو به عقد شما در میارم چون تیکه تحمل آزارهای شما رو ندارم به بعد دستور داد هرچی زودتر سه دخترش رو برای ازدواج با سه شاهزادی سرزمین فیرمید آماده کنن وقتی سه دختر خواستن همراه همسرانشون به خونه جدیدشون برن ملکه مادر به هر کدوم از دخترانش یه حلقه تلایی داد و گفت اگه از همدیگه جدا شدین و بعد از سالیان خیلی دراز دوباره همدیگه رو دیدین میتونین به وسیله این حلقه ها همدیگه رو بشناسیم. خلاصه شاهزاده خانم فابیلا که از بقیه بزرگتر بود با کبوتر شاه به بالای کوه بلندی رفت اونجا شاهزاده قصر بزرگی براش ساخته بود اونا زندگی تازه شنو آغاز کردند شاهزاده وستا دومین خواهر به همراه شاه به جنگلی دور رفت که کاخی زیبا و باشکوه در اونجا ساخته شده بود و خدمتکاران زیادی برای خدمتگذاری اونها آماده بودند ریتا کوچکترین و جوانترین شاهزاده هم صاحب کاخی باشکوه شد که بر روی سخراهای سنگی در وسط دریاها ساخته شده بود سه شاهزاده خانم سالها در کنار همسران وفادارشون زندگی کردند. ولی با وجود این بعضی وقتها احساس تنهایی می کردن. در این مدت پادشاه سرزمین ایتالیا صاحب پسر کوچکی شد ملکه مادر عادت داشت که برای اون قسیگ سه خواهر زیباش رو که با گوز شاه،, کبوتر شاه و دلفین ازدواج کردن تعریف کنه روزی تیتون پسر پادشاه که حالا دیگه جوون قوی و بلند بالایی شده بود گفت آه من میخوام به دیدن خواهرانم برم میخوام اونا رو ببینم به من یه اسب بدین تا به دیدنشون برم پدر و مادر هرچه اصرار کردن که به سراغ خواهرانش نره فایدهی نداشت و یه اسب تیزباه در اختیار تیتون گذاشتن ملکی مادر قبل از رفتن پسرش به اون حلقه ای داد شبیه حلقی که به دخترانش داده بود به این ترتیب تیتون برای یافتن خواهرانش به راه افتاد رفت و رفت تیتون در جستجوی خواهرانش به سرزمین های زیادی سفر کرد شمال، جنوب، شرق و غرب اما هیچ نشانی از خواهرانش به دست نیاورد بعد از مدتی سرانجام تیتون خودش رو بر بالای کوهایی یافت که کاخ کبوترشاه روی اون بنا شده بود شاهزاده فابیلا مشغول قدم زدن توی باغ کاخ بود که چشمش به تیتون افتاد. اونو صدا زد و گفت: ای یه زیبا، تو کی هستی؟ از کجا اومدی؟ تیتون اسم خودش، پدر و کشورش رو برای شاهزاده فابیلا گفت. فابیلا وقتی حلقه طلایی رو بر دید فریاد زد: وای خدای من، تو تو باید برادر عزیز من باشی. بعد به طرف برادرش دوید و اونو در آغوش کشید و با خودش به قصر برد و حسابی از اون پذیرایی کرد چند ساعتی گذشت و فابیلا از برادرش کیتون خواست که توی کموت پنهون بشه اون با خودش گفت چه کسی میدونه که کبوترشاه چه جوری از برادرم استقبال میکنه وقتی کبوترشاه به خونه برگشت دید که همسرش ناراحته وقتی علتش رو از اون پرسید فابیلا گفت که چیزی نیست فقط کمی دلش تنگ شده و بعد از همسرش پرسید همسر عزیزم اگه اگه یکی از خیشاوندانم به اینجا بیاد تو تو نارک میشی؟ کبوترشاه با مهربونی جواب داد البته که نه من اونو مثل یکی از خیشاونده خودم حساب میکنم فابیلا با خوشحالی گفت پس پس بدون که برادرم تیتون به دیدنمون اومده و الان اینجاست. است و بعد رفت و از برادرش خواست که از توی کماد بیرون بیاد کبوترشا با خوشروی از تیتون استقبال کرد و گفت اینجا رو مثل خونه خودت بدون راحت باش تیتون خلاصه تیتون ماها پیش اونا موند و در رفاه و شادمانی زندگی کرد اما بلاخره دلتنگی به سراغش اومد و ازمین گرفت به دیدن خواهر دیگش یعنی وستاوره وقت رفتن کبوترشا یکی از پرهای سفیدش رو به اون داد و گفت اینو بگی رو از اون نگهداری کن وقتی با مشکلی روبرو شدی اونو بنداز و فریاد بزن بیا وقت خواهی دید که چه اتفاقی میفته تیتون به طرف خونه خواهرش وستا براه افتاد رفت و رفت و سرانجام قصر رو پیدا کرد تیتون باغ بزرگ زیبایی رو دید آروم وارد باغ شد و در اونجا زنی زیبا رو دید که در حال چیدن زیبای قرمز بود زن با دیدن تیتون پرسید ای جوان زیبا کی هستی و اینجا چیکار میکنی؟ تیتون به سش رو برای شاهزاده وستا گفت اونا حلقه هاشون رو با هم مقایسه کردند و متوجه شدند که خواهر رو برادرن بعد تیتون مدتی رو هم در غصر خواهرش فستا گذروند وقتی تیتون خواست از قصر خواهرش شوستاب بره گوه از شاه یه تار از مواش رو به اون داد و گفت روزی که به کمک نیاز داشتی این تار مو به دردت میخوره تیتون تیتون از اونها خداحافظی کرد و برای دیدن کوچکترین خواهرش شنی شاهزاده ریتا به راه افتاد اون باید مسافت های خیلی طولانی رو با کشتی سفر میکرد تا به قصر ریتا که بر روی سخراها بود برسه بالاخره هم به اونجا رسید و ملک ریتا و دلفینشا به گرمی از اون استقبال کردند و تیتون هم مدتی رو با خوبی و خوشی در کنار اونها موند اما بالاخره گفت ریتای عزیزم من باید هرچی زودتر نزد پدر و مادرم برگردم و از آسایش و رفاه شماها برای اونها بگم مادر خیلی نگران زندگی شما است. بعد از خواهرش و دلفین شاه خداحافظی کرد و دلفین شاه موقع رفتن تیتون پولکی از بدنش رو به اون داد که در روزهای سختی از اون پولک استفاده کنه. تیتون بعد از یه روز سفر در جنگل تاریک به برجی در وسط دریاچه رزی. برج پنجرهی داشت که پشت اون دختر زیبایی در کنار اجده های زشت و وحشتناک نشسته بود. دختر تا چشمش به تیتون افتاد به آرومی گفت ای جوان دلیر و شجا من در کنار این حیولای زشت تنهام من از اینجا ببر تا همیشه دعاگوی تو باشم خواهش میکنم. تیتون از دختر پرسید تو کی هستی؟ دختر آروم جواب داد. من دختر پادشاهم و سال هاست که در اینجا زندانی شدم. تیتون گفت: من چجوری میتونم به تو کمک کنم؟ دریاچه خیلی وسیعه، برج بلنده و اجدها من تو رو میخوره. اما اما یه لحظه صبر کن. من فکری دارم. اون وقت پر کبوتر شاه، موی گوز شاه و پوله که دلفین شاه رو به زمین انداخته. و بعد کبوتر گوزد و دلفین رو کنار خودش دید کبوتر، دلفین و گوزن یک صدا به تیتون گفتن ما اینجا هستیم چه دستوری داری تیتون به برج و دخترک اشاره کرد و گفت اون اون دختر بیچاره رو نجات بدین از اون زندان ترسناک آزادش کنین بعد کبوتر شاه بر فراز پنجره پرواز کرد و دختر رو نجات داد اون از رودخونه عبور کردند و دختر رو به تیتون رسوند در این موقع یه دفعه اجده ها و از خواب بیدار شد و به طرف شاهزادگی جوون رفت تا اونو بخوره شاه به سرعت دوستاش رو صدا زد دسته از شیرها و ببرها حاضر شدن و دقیقه بعد دیگه چیزی از اجده ها باقی نمونده بود بعد دلفین گفت ها حالا نوبت منه تا این برج نابود کنم دیگه نباید کسی اینجا زندانی بشه بعد دریا رو صدا کرد دریا خروشان شد و برج رو زیر آب برد تا دیگه هیچکس اونجا اسیر نشه تیتون خیلی خوشحال شد و از شوهران خواهرانش تشکر کرد اما اونا گفتن تیتون عزیز این ماییم که باید از تو تشکر کنیم چون تلسم ما تا زمانی که جان دختر پادشاهی رو از خطری بزرگ نجات نمیدادیم شکسته نمیشد و ما به شکل گوه از کبوتر و دلفین باقی میموندیم. و حالا دیگه این شاهزاده خانم چهره واقعی اون رو به ما برگردوند و الان لحظه باطل شدن تلسمه در این موقع کبوتر، گوزن و دلفین در مقابل دیدگان تیتون و شاهزاده خانم با چهره واقعیشون ظاهر شدن تیتون از خوشحالی فریاد زد حالا پدر و مادرم باید شما را ببینند. بیاین، بیاین همه برای سفر به ایتالیا آماده بشیم. کالسکی که به وسیله شش تا شیر کشیده میشد، منتظرشون بود و اونا سفرشون رو به سرزمین ایتالیا آغاز کردند. در ایتالیا پادشاه و ملکه به گرمی از اونها استقبال کردند و پادشاه و ملکه سرزمین فیرمید هم با شادی به اونها پیوستند. و در جشن عروسی که برای شاهزاده تیتون و همسرش برگزار شده بود شرکت کردند اونها سالهای سال در کنار هم زندگی کردند و دیگه هرگز کسی اونا رو در کاخهاشون روی تپه، سخره و وسط دریا نه این چه که براتون نرخ کردم افسانه دلفین دلفینشا و شاه بود از مردمان سرزمین ایتالیا برگرفته از کتاب افسانه های مردم ایتالیا به قلم آن مکدانل با ترجمه از رزوان خورمیان مکسیم گورکی نویسنده معروف روسی میگه اعتراف میکنم که در جریان تکامل ذهنی من افسانه ها نقش مثبت زیادی داشتن. به خصوص وقتی که اونا رو از زبان مادر بزرگم یا به سگویان دهکده میشنیدم. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح وی راستار سهیلا کریمی اجرا مهران دوستی صداوردار حیدر صفتری تیگه کننده زهرا عبدالله زاده افسانه دیگر بدرود